اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انشاءالله که این مشکلاتی که در سر راه نظام اسلامی هست برطرف بشه امام زمان علیه السلام خودشون حل ماها ما بلد نیستیم برزن کوتاهی میکنیم انجام به خود امام تو که همه کارا رو خودش تادا برطرف کرده با انایتی که به بلی فقیه داشته و این بستیجی ها او اینا که میرن شهید میشن اینا, اینا. یعنی کار این امطلاع بر اختی سه چه افراده یکیش هم آن زمانه یکیش هم یک ولی هم این خانواده شهده و اونا که بچه شما میبرستن هیچ نگلانی هم ندارن که بچم شهید بشه خب من میمونم پیر. پیری دوران پیری بدون فرزند خیلی سخته ببینی اینا کار رو را میدازن اینا کار رو پیش بردن ان صدق که این بار هم این مشکلات پنج بشه و اساسی مشکلات حل بشه انشاءالله الله یه صداقت خوان هم رسم الله و سلم اسیره تو الاغلیتو دیا دع و تبانیه مل عملی یو فی سلوچه مل خارجی یه الا فعل شیئا او ترک شیئا ولو كان دع بهم على ذلك ناشعن من آداتهم او سلائقهم او قیر زالکهم ببینید مقدمه رو اگر نگاه کنید اونجا گفته بود ضرورت البحث عن حجیت سیرت الاغلایی یعنی ما دو تا بحث داریم یک ضرورت این بحث چرا از سیرت الاغلایی باید بحث کنیم؟ دوستان که بودن یا فایلا رو گوش کردن بگن جهت اول مبدع تصدیقی مبدع اصوله بس. یعنی اونو باید بدانیم تا بعضی از بحثی اصولی ما پیش بره مثل بحث حجیت, حجیت خبر واحد حجیت خبر واحد الان با سیر اغلا پیش میره بله. حجیت زواهر سیر اغلا نباشه کارمون ساخته است دو جهت دوم خودش یه مسئله اصولیه اصولی اصولی که تو فخت در طریق استنباد قرار میگیره جهت سوم، داینت استدلال به حافل فقه تسط بعضی از استدلال های قدیمی منسوخ شده مجبوریم اونها رو با سیره جایگزین کنیم یعنی سیره اقلا به جای استفاده از اجماع منغور و پس مهمه و جهت چهارم، از اقویلا جمعی ازاده کرد اینکه سیره های جدید باید بحث کنیم ببینیم اون سیره های جدید هم مثل سیره های قدیمی هست یا نه وزنشون مثل اون هست یا نه و این چهار جهت در شان اون که حالا این بحث سیره خوب تنقید نشده توسط علما پس ما باید بحث کنیم تو دومین بحث در مقدمه گفتم مقدمه ترجیحی است شرح مصطلحات به خاطر همین گفتم شرح رو مرفوع بکنید شرحه نکنید چون ضرورت شرح را نمی بگیم خود شرح خودش یک بخشی از مقدم است. شرح المصطلح حالا همون شرح المصطلح ها آجان اصلا سیره اقلا چی چی هست بعد در کنارش ارتکاز اقلایی چی هست شما شنیدید ارتکاز اقلا بعد سیره مستحدثه چی هست امضای شاره چی هست تا آخرین بحث حجیت اصلا یعنی چی سیره اقلا حجته بخود حجیت یعنی چیه یا باشه شاگرد مزفر تو اصول فقه ایشون هم در خوبی داشت البته خب از علما معمولا گرفتن این در بود میمد گفت اول اون مفردات رو شهر بدیم که محل نزاع متفهم بشه با هم دیگه مشکل انتقاد این که کجا شما یه جای دیگه بحث کنیم، من یه جای دیگه نه با هم متفهم شیم بعد بحث رو شروع کنیم حالا اینا هم اول اصطلاحات رو توضیح میدم آقا سیلی اقلیتی چیست قاب لازم که من بخونم به حساب دیدی در یک نفر نظرش رو بپرسن سیره اوغلا چی تو زهره شریف شما دوستان هست بفرمایید فالو دوارم بفرم؟ خان تو چی اوغلا داریم هر دلیستین خوب اون اوغلا توضیح اوغلا خب سیره اوغلا چی صحو واله رفتاری که سیره صح چه رفتاری صح رواله بازش کن صح چه رفتاری یعنی خب چی طبانی هم چیز سخترش رفتار رفتاش آها. ببینی نکته ای که اینجا اصرار دارند این رو بر شما واضحش کنند اینه که ما در بین اقلا دو تا چیز داریم یک اون نمودی که در رفتار خودش نشون میده یعنی نمودی که شما در عمل کرد می میبینید بینید اقلا این کار را میکنند اقلا این کار را میکنند همین حالت است، استمرار داره همین که اقلا یه نفر نیست دو نفر نیست اقلا این کار را میکنند و کار این میشه سیده اقلا الان تو میتونه همه اقلا آنم نباشه بخشی از اقلا باشه مثل ایکی بگیم مثلا شرکی ها موی سرشون رو می پوشونن زناشون کلو اغلا نشد دیگه قربی ها نمی پوشونن نداره با سیر اغلاست اما در کنار این یک مطلب دیگر هم هست اون هم است که در ذهن اغلا وجود داره هرچند نمود رفتاری پیدا نکرده باشد اون ذهنیتی که در ذهن اغلا به قول بعضی از آقایم کرده یا رسوک کرده اون ذهنیت دیگه سیره و غلاب چون عمل نمیشه اون یعنی داریم اینجوری بگم داریم اون جهت ذهنیتش رو نگاه میکنیم لذابه سیره نمیگیم حتی اگر عملی هم شده باشه ذهن را نگاه میکنیم، به اون میان ارتداز پس ما بین دو حقیقت باید همینجا جدا کنیم یک سیره اقلائی دو ارتکاز اقلائی سیره اقلائی ارتکاز اقلائی سیره نمود رفتاری عمل عملکرد هست اما ارتکاز زهنیت هست مثلا در ذکر نحنی ما این هست که در عین همه ما این هستش که انسان باید خودش رو به انسان مثل حیوانات که پوششش با خودشه خدا انسان رو با خلقت حیوانات بدون پوشش ش آفریده باید خودش رو به این بده اینا موتی لوطی از خداست اگر ما یه طالبوی همیشه به اون چسبیده بود خب تابستون از یاد می‌شد اما حیوانات اونجوریه انسان خدای کاری کرده اختیاری دست خودشه که البته همین اختیارم کار بستادم میده همین شعیان هجاب و ها پیش میاد این از نمیاد. چرا؟ ما نگفتیم اینها هیچ ارتفادی با هم ندارن قبیدی از عمل کرده های ما ناشی از همون ذهنیت ها یعنی... مثلا یکی از ذهنیت های همه ما اینه که انسان دوباره سود بیشتره یعنی من در تعاملات هم سود بیشتر میخوام بذاروا نتیجهش رو می‌بینید که تو عمل کردشون هم نشون بوده خودش. تو معاملات هیچ وقت کسی رو ندیدید که چونه بزنه علیه خودش. طرف مقابل هم ندیدید که چونه بزنه علیه خودش. اینجا که تو این بحث‌ها ارتباط بین سیری عملی و ارتكاز ذهنی رو الان نمیخوان بگم. اون دیگه دست کن. روش فکر کنید. ببینید آیا سیره ای داریم که فائته قاض اقلایی مرتبط نباشه یا نه او دیگه اونجا بحثش نمیشه اینجا بهش نمیاد اینجا ایجا صرفا دارم دو تا اصطلاح رو براتون توضیح میدم ارتباطش رو چی هست شو دیگه دست خودتونه خیلی خوب این از این دوتا مطلب حالا اینو بخونیم مطلب اضافی باشه توش خوشم عرض میکنم از سیرت العقلایی که تو شما تو این مثال های مطرح شده در کلاس کتابا جایی دیگه اینها دقت کنید به نظر من یه برگه ای دفتر چیزی هم دستون باشه سیره ها رو بنویسید مثلا توی یه دفترتون هر جا مثال چیزی میبینید بنویسید تیترش هم باشه سیره های اقلاعیه یک مثلا هم مثال الان زدم پوشیدن انسان پوشش انسان دو مثلا در جستجی سود بودن انسان بعد اینها رو که نوشتید. بعدها مثال لازم دارید خیلی از اینها بعدها لازم اتونی. حتی که حتی اینا یه جای جمع بشه بعضاً میبینید که یه دبیه نفر میبین آه یه, سیره یه بگو آدم هایی فکر کنم یادش نمیان خب من من صدها سیره بررسی کرده حالا یه هیچ آدم نمیان. یه جا بنویسید برد میسید یه دعبال اقلا دعب اقلا اون روش و اون عادت اقلا و تبانی همول عمالی تبانی از بنا میاد دیگه اینها با هم بنای برمی رو گذاشتن مثلا، الان تو حوزه، سیره عملی حوزه که در ساعت هفت شروع میشه مثلا کلاس حوزه این ندهیم از چار صبح شروع بشه سیره عملی اقلا، او... سیره عملی ما اقلا اینو ساعت هفت شروع میکنیم مثلا دیم. تبانی عملی ما همین است، فی سلوکمون خارجی نمود, خ... نمود خارجی داره الان فعل شیعه این الان یا متعلق دعبه یا تبانی من به نظر میسمیم ماهی تبانیه دعب الان نمیخواد به نظر تبانی توانی تبانی عملی اقلا در سلوچ خارجیشون بر یک فعل کاری بر فعل یک چیزی الان تو فقط هم فعل نیست او ترچ شیعه ترچ میکنن شما یک کاری رو بین اوغلا میویدی که انجام نمیدن مثلا اوغلا مثلا اوغلای اونا که ما میشناسیم، توانیشون در بشونه که در جلوی همدیگه دست تو دماغ نمی کنن رو بیارن بیارن درسته؟ پس این هم سیده اوغلایی وقت هرچه این فعل. اینا همهش حالا یه جنبه سیده های اوغلایی رو توجه کنیم بعضی از سیده های اوغلایی ناشی از چیه؟ نواشی از طبیعت انسان نواشی است طبیعت. طبیعت انسان باعث نمی پوشه بعضی ها ناشی از اون فطرته نه خلقت انسان شاید اون سودجویی اون فطری باشه این چه انسان ها در زمستان ها لباس های ضخیم تر می میپوشن کاپشن نمی این نواشی از طبیعت چون شاید لازم شه لازم ها درست میشه ابلند هر کدوم از اینها رو بگی همش سیرا است منشهش ولی ممکنه چیزای مختلف بعضی وقتا ناشی از یه عمل عقلیست عقلش می این مثلا انسان ها نسبت به خدا جرایش دارن مثلا حالا میتونیم اینا روش کار کنیم. پس منشه های سیره هم بهش باشه قفلت نکنید حالا یه اشاره یه عملا میشه شید وَلَاوْ كَانَ دَعْبُهُمْ عَلَىٰ ظَالِكَ ناشن من آداتهم او سلائقهم او قیر بعض اون دعها ناشی از عادت های بین اونهاست. مثلا عادت بین ما ها الان اینه که مثلا صبحانه و نهار و شام داریم. عادت ما اینه که سه ورده غذایی میتو اگر از اول ما را عادت میدادن بر دو ورده یا چهار ورده یا ما چهار ورده مثل بعضی که چهار ورده بعضی ها ورده صبحانه و بین صبحانه و نهار گ نهار بینه. نهار و شام عصرانه بعد شام بکشه. لذا اینها ناشی از عادت بعضی ها ناشی از, ناشی از سلیقه سلیقه انسان ها مثلا الان توی مهمونی های ما چی میدن غذا مثلا خرمه سبزی و اینا چیزا دیگه چند تا غذا خاصی ها. سیده اوغلای ما اینه خب اینا ناشی از سلائقه. این غذا بیشتر خوشمون میاد مثلا دیگه او غیر کرد موالد دیگر که مثال زدم براتون طبع و عقل و چیزای دیگر هم پست و قد یعبرو انها به بنایر اغلا دید روز میپرسیدید سیره اغلا با بنای اغلا چه فرق داره؟ بنایر اغلا فقط جنبه عملی شو باید حواظتون باشه او سیرت ناس یه چیه و علا حاضر لا یطلق علا ارتکازات هم از سیرتو ارتکازی که تو ذهن اونها هست ذهنیتشون اون دیگه سیده گفته نمیشه از الارتکازو قید را سلوک خارجیه بسیار خوب این مطبع به نظرم برای تو روشن شد کرد بین این تا فرق هست حالا ارتکاز رو هم هم توضیح میدیم باز بیشتر دیم به این قطعه سیده ناس در گهس اوغلا چیلی سفتی بچه؟ یه چی برای انها به بنای اوغلا سیر اغلا رو به نهای اغلا میگن یا سیر اغلا رو سیر ناز هم میگن به جای اغلا ناس هم میگن داره دیگه همه این یک حقیقت رو داره اشاره میدونی بله برو، الان همه اوقلای عالم سودجوه همه اوقلای عالم <تصفيق> بله خب، <تصفيق> یه سیره هم داریم، سیره های متشرعه، اون هم هست <تصفيق> اگر در بین متشرعین، البته متشرعین اسلام در بین متشرعین یه چیز سیره باشه، میگم سیره متشرعه اما یه سری سیره هست، سیره اوقلا شامله یا همه انسان ها میشه <تصفيق> <تصفيق> یا تعداد معتنابه که مثل، مثلا گفتم شرقی های آدم این مشکل نبید میگن سیره اغلا میگن مشکل نیست اما نمیشون سیره یه مدرسه اینه خوب باشو این سیره یه توی مدرسه این چه امکار میکن بسیار خوب بریم سراده ارتکاز ارتکاز تا گفته میشه همش برید تو ذهن برید داخل ذهن مرد فی از ازهان اغلا ارتکاز اغلایی آن چیزیست که در ذهن او قلا ارتکاز داره در ذهن او قلا تسبیل شده قرار داره ارتکازه یعنی قرار داره ثابته از جدت لغمی ارتکازی نیست ثابت شدن در یه جهن مندون اشتراط انیت جسد ازال کل ارتکازو به تمامهی او بعضهی فی اعمالهم خارجم در ارتکاز اقلا یه شرط نیست که این نمود خارجی هم داشته باشه این در عمل هم خودشو نشون داده باشه یه تجسده یعنی تجسم پیدا کنه تجسد پیدا کند اون ارتکاز بیرون خودشو نشون بده حالا به تمامی باید به تمامه در بیرون باشد اتا بهش بگیم ارتکاز نه نمیخواه حتی بعضش هم لازم نیست در بیرون نمود پیدا کنه. یعنی ارتکاض اقلایه شما ممکنه بگردید ببینید یه ارتکاضی داریم که اصلا هیچ نمود خارجی نداره بعضی ارتکاض ها رو پیدا ببینید بعضیش بعضی از این ارتکاض اقلا در بیرون نمود دارد مثلا فرض کنید یه ارتکاضی دارن که انسان مثلا سجو ببینید یه مقدار از این در بیرون نمود بده یه مقدار به منصف عمل رسیده میگه نه شرط نیست اصلا این چه به مرحله عملی برسه به یه جمعا شرط تو ارتکاز نیست حالا روی این مطلب یه فکر کنید که آیا ما ارتکازه برید ارتباط بینید ارتکاز و عمل رو گفتم بروش فکر روی این فکر کنید آیا ممکنه اصلا ما ارتکازی داشته باشیم که به هیچ عنوان نموده عملی نداشته باشه ارتکاز ذهنی در بین اقلاع ولی در عمل اصلا نشون نمیده خودش رو هیچ وقت ممکن این باشه حالا ما الان همین رو گفتیم گفتیم میتونه باشه شرط نیست اسم ارتكاز ردی به اون عمل کرده بیرونی این نداره اینا هم همینه غلط استلاس بکسوزید اما حالا روش میتونید بعدا فکر کنید که آیا ارتكازی میتونه باشه که در عمل خودش رو نشون نده یا نه بله ممکن میده. بله ممکن. مثلا ببینید که همه ارتکاز ذهنیه، همه عقلان این هستش که حکومت باید خدایی باشه یا الهی باشه یا بس خدا باشه. ولی در عمل انجام نمیده. حالا ببینید همین میتونه جوابی می برای سوال من باشه یا نه. خوبه یعنی خوب بابی رو باز کردی. همین جور چیزها رو روش فکر کنید. اینا رو روش فکر کنید، چم چم ذهنتون و این سینه‌تون وسیع‌تر میشه، بعداً تو فکر به درد می استفاده میکنید از درد میکنه اون یه بحث دیگه از ارتکاز ذهنیه مجرد از عمل به درد میکنه این تعریفی که اینجا را میکنم میگن ارتکاز یعنی چیزی که میتونه اصلا بروز عملی خارجی نداشته باشه این رو ما ارتکاز میکنم حالا این به چه درد میکنم یه حقیتی برا در ذهن این ها هست حالا رو همین میساب عرض کردم که اصلا سوالی است که آیا میشه گفت که ارتکازی داریم که هیچ تأثیر عملی نداشته باشه اگر جوابش این باشه که نه واخر چه شما میشه ارتکازا همش نمود عملی میتونه داشته باشه حالا میتونی توش فکر کنی دیگه اینو من نمیکونم چون کتابم واردش نشده دیگه ما هم واردش نمیشیم راستش بسیار خوب وحوه، حالا این وحوه یه نکته جدید میگه میگه ارتکاز اقلائیه اگر لیست کردید یه لیستی دارید ارتکازات اقلائیه اینا نوشتید در چنانش هم یه لیست دارید سیره های اقلائیه میگه بین این دوتا ارتکاز اقلائی بهتر است از سیره اقلائیه حالا قبل از که کتار رو بخونیم روی یه خوده فکر کنید چرا آن چیزی که در ذهن عقل است بدون نظر به عملشون این پا... حالا تعبیر من پاکتره زلانتره بهتره آلودگیش چمتره نسبت به سیده های عملشون مثال که آیا زد این نشون داد، یعنی در ذهن به حالشون در روی کاغذ بگیه حکومت باید خدایی باشه اما در عمل میبینی آلوزه شد حکومت اتفاقا هم دست کسی که نمیرسه اما دست خدا و اوصیا خدا اولیار خدا این اول نشون میده حالا چرا؟ میتوید بگی چرا؟ مطلق همینه ولی چرا؟ در مقام عمل خب وقتی سرزیگاه رو باید وقتی حمل نشون بکنید شاید فضای جامعه فضای نباشه که تحبیر باید. فرنیش اینه ببینیم منشه ذهنیت منشه ذهنیت مهمولا آلوده نیست حالا از عقلش میاد از فطرتش میاد فطرتش بهش میگه باید من پوشیده باشم معنوی اصلا محدود میشه حالا عقل یا فطرت یا این منشه های پاچ یک قانونی رو, رو روی کاغذ براش می تو ذهنش. تبیر روی پاست تبیر خوبی بود اما وقتی به مرحله عمل میرسه طرف تو مرحله عمل اون شیطانیات هم داخلش میشه نفسیات داخلش میشه میبینی که اگر حکومت دست خدا باشه دیگه زن, و زن مردم نمیتونه جلو من بیهجاب بیار من میخوام بیهجاب بیار که ببینم میشه لذت داره لذا میگه پس حکومت رو از دست خدا بگیریم اینجوری میشه این همین مطلبی هستش که اینجا میگن که ارتكازات او بهتر هستن از سیل‌ها. اینجا به که مثلا در مورد که انسان محال است که در واقع ما اولا دریای خون باشه دریای شوه در واقع که قوز خارجی پیدا ش تمامش چه بخشش؟ یه مثلا این، یه مثلا در امور نظری، از هایی آقلا نگریست. یه مثلا با کدومیت کلا، یا احدهایت کلا؟ و این مسئله هست که الان مثلا اغلب میشینی مثلا سوال که مثلا مستحب بودن مثلا سواله بدی. این مسئله... البته بعض ارتباط دوستان ببینید با من موفقیت متأمریت هم به بعض. از کلاس چندانش بیاد تو بعض. ببینید بحث ارتکازات اقضاییه به نظر مثل که با عقل نظری بیشتر نزدیک یا با عقل عملی یعنی بویندگان این بحث ها منظورشون از ارتکازات اقضاییه چامل علم نظری هم میشه مثلا اجتماع نریزه محال است. این ارتکازات اقضایی است درسته؟ اینها رو میگن یا نه؟ از اینا نیست شون از ارتکازات اقلایی اینه که بله انسان در جورت و سود انسان باید پوچهش داشته باشه انسان ها مثلاً باید عدالت رو رعایت کنند اینه عقل عملی شاید منشه خیلی از اون ارتکازات نظرتون چی هست؟ ارتکازات اقلایی شامل اون نظری هم میشه که جز کوچکتر از کل رمثال اینها به نظر میرسه که اگر هم شامل باشد چون ارتکازه دیگه بود خیلی زهنیت من اجتماع نهرزه اونان هستی ارتکازه دیگه تحریف ارتکاز این چه اون هستید چون مثلا غیر همی موایزه مطابقه هم دمیشن من همیشه موایز نظره که فرمودی قیل اینا اونان نمود عملی که بیرون هم برده نمود عملی این اصلا نمیتونن داشته باشن بله بله بل. ولی ارتکاز او قداریه چامل اینا میشه یا نه میتونه جامعه بشه هرچند این حال ما تعبیر به عقل میکنم محکام عقلی نه اقلایی اما به نظر میسه اون چه تو بحث های اصول و فقه به درد ما خواهد خود ارتکازات اقلایی در رابطه با رفتار و به این هاست یا بگو منچه عقل عملی داشته باشه خیلی به نظر میسه این. این لذا این بحث عقل نظری که شما گفتید به نظر میمه دار دور میکنه ما رو از اون بحثی کرده های نح رفت خب ارت سی ارتکاس که با سیره جدا شد که و سیره بله فقط عمل کرده خب تعیف شما میه اما ارتکاس ذهنیتیست است حالا سوال اینه آیا ذهنیتیست است که ادامه عملی داره میتونه داشته باشه یا نه اوننا اونایی رو هم شاامه میشه که اصلا به عمل ررفی نداره. به نظر میرسه که هر دوتا رو شامل میشه ولی خب، ما بیشتر با اون اونایی که اثر عملی میتونه داشته باشه کار داریم خیلی خوب و هو من جهتن یا من جهتن اعلا قیمتن و اشد دعتبارن من سیرته مل خارجیته این هوه میخوره به ارتکاز اقلالی از یک جهتی که الان میگیم از چه جهت اعلا هست بالاتر هست قیمتن ارزش و اشهد اعتباراً اعتبارش هم شدیدتره یعنی اگر تو بحث فقهی شما ثابت کردید ارتكاز او این است این اعتبارش بیشتر از سیر او خواهد بود اعتبارش من سیرته ملخارجیته حالا همون جهت چیه من جهت چی گفتین اینو قرار توضیح می‌ده از جهت منشأ منشأ ارتكاز بهتر است از منشأ سیر لکونهی فی الغالب ناشعن من امور اقلائیت ارتکاز اقلائیه منشهش خیلی وقتا امور است کل فطرته والعقل العملیه بریم؟ عقل عمل و تعالیم الانبیاء و های علیه مسلم ادله را رایت کنیم این یه ارتکاز است معجوز عقله. اصلات، اصل اعراض. یا انسان نباید بدون پوشش بیرون بره، در انظار ظاهر بشه. این ممکن از همین تعالیم انبیا، یعنی رسوباتی از تعالیم انبیا و وصایا در ذهن اوغلا مونده، که اونها به صورت همین التکاز اوغدایی الان میتونه کش کنه. خب اینا چیزهای خوبی هم دیگه ارتکازت و قلعه اینجوری هم و اون وقت زلال هم هست مخلوط با چیزهای نفسیات و شیطانیات نیست تا به مرحله عمل برسه تو عمل چقدر دیگه خراب میشه لعدم تصور مناشع له غیره مناش ای که غیر این عقل عملی و فطرت و تعالیم انبیا اینها باشد غیره ها این اون چند موردی که گفتیم عادتا منشه غیر از اونها نداره این ارتکاس لذا وقتی منشهش این چیزهای خوب شد خود ارتکاس هم خوب خواهد بود بعدکه امورن امورم باطنیت اینها امور باطنیست گفتیم است که منشهش اونهاست و ها این بعدکه اونها امورم باطن هم نکته بگذیتم نسته نمیدونم رو بعد چی گفت شیز بزنه تو میده بر... یعنی میتونست این رو نگه چی رو؟ سوال رو؟ می... این برد کامونه ها امورن باطنیتا این رو نیازی نبود به این تحبیر شما ارتکاز اقلال رو دارم میگیم که تو ذهن دیگه تو باطن دیگه اینها بعد از اینکه امور باطنیه ای هستند من ای غیر از فطرت و عقل عملی و تعالیم انبیان ها ندارم در نتیه و چیزه به خلاف هازا بخلاف سیرت العملیته الان مثلا سیره عملیه بین مردم دنیا اینه که لباس رسمی مردان چیه؟ کتوشربار این منشهش چیه؟ تعالیم بوده؟ نه عقل عملی بوده؟ نه فطرت بوده؟ نه منشهش چی بوده؟ هیچی تبلیغاتی که از غرب شد غربی این رو بر ما تحمیل کرد و الان لباس رسمی مسلمانان مثلا این کتو شوال هم ببینید تو عمل پس منشه های دیگری هست اما در ارتکاز ذهنی منشه فقط همون خود همون قربی ها هم منشه ارتکاز همون فطرتشون ولی تو عمل جلوگیری میکنن نمیذارن چمچم چم اگه تا بردازی مدت همون هم اونقدر عمل نمیشه بهش مفهول میشه یعنی خود یه قربی هم بردازی ماداد ممکنی ها ادالت بده اصلا. یعنی ارتکازات هم میتونه عوض شد عوض بشه نه که حقیقتش عوض شد طرف قفلت میکنه اصلا نظرش دیگه یه چیز دیگه یه جایگزه نمیشه بهش تو کتاب میرسن که ادالت خوب نیست ادالت بده چرا ارتکاز اغلا هست؟ تو باطن اون هم هست حتی ولی ازش قفلت کرده یا چون به زردشه اون رو روش رو پوشونده با یه چیز جنگه جایگز اشتباه گفت خب ارتکاز و اقلاق اون, اون کسایی که به اصلاف خاک و زنگار کنه به چطیشون میره اینا دیگه از دایر و که اتکاز رو کنن نه اقلاق اقلاق ارتکاز رو ته دلشون هم همون چیز خوبه هست متعندت دیگه اون رو مخفیش کردن پوشوندن و باش کاری نداشتن کم کم اصلاف فراموش شد به بوته فراموچی شده نه اینکه که حصف شده حصف نمیشه لذا ارتکاز اقلاعی در اونها هم با میگیم هست اما به مرحله عمل چه میرسیم میبینیم نه هوای نفس میاد شیطانیات میاد چیز دیگه این اصلا عمل یه مطلب دیگه میشه شبه چه فرمون بیدیم؟ فرم آسان مرسون سیری سیره اومده اینجا با مستنه خور هم هم هم هم تنویزشون کاش اینجا عرف رو هم میگفتن آره اینجا جای عرف خالیه حتما باید اینجا بگفت عرف چه درم که با سیری اغلا البته بعدم دست میکنیم ولی اینجا که اصطلاحات رو توضیح دیگم اینجا هم باید اشاره میکنیم خیلی وقتا عرف همون سیری اغلا مثلا عرف ما اینه که به هم میرسیم به هم دست میدیم دست میدیم درسته این الان سیری اغلا هستیم عرف اورف... ما شدیم اینه ع علومی جامعه من میگه دست میدم یعنی دست دیم. دست دیم. مط... این دست نه مثلا متشر این متشر این عرف شده که ترک دست دادن با زن نامحرم خب اینم شو دیگه اما او اوغلا کلش اینه که به هم چه میدونن دست میدن بله, بله. خب و هزا به خلاف سیرت عملیت، فانه انها سیری عملیه قد تن شعومن صرف تقلید الان ما تقلید کردیم از غربی ها و شلوار می پوشی. لذا تو مثلا داماد بدون و شلوار باشه قبول نمی‌کنیم. لباس لحظی می کنید این چیه مثلا دراج این تقلید از غربه اصلا 100 سال پیش که هیچ دامادی کت و شلوار کنید ولی ما هم اما من پوشیدم چرا من داشتم من قبل داشتیم برای دومادی نب... از قردی دردی داشتیم خب فعنده قد تن شد و به تقلید و اتباع بعض اناس ن... بعض بعضا آخره محزل مشاهدته الان مثلا مدل مو اینها میبینید که الان بعضی از های ما موهاشون رو یه جوری می‌زنن چون داره اونها رو مشاهده یا همین تاتو میکنن مثلا 15 سال پیش تاتو اصلا نبود این. چی چی داره روی بدن و اینا انجام میدن قدیمی ما نبود اینا بعدا اونها انجام دادن ما هم نگاه کردیم و ما هم تکرار کردیم اینا هست لذا لزون عملی خوب نیست خیلی وقتا یا بعضی وقتا اما افتضادات ذهنی معمولا خوبه بسیار خوب حالا پ... اما من سوالی از شما دارم و این که از شما میخوام روش کار کنید. یه ده هفته سال روش کار کنید. اینه که ارتکازات رو لیست دریافت کنید. ارتکازات رو لیست دریافت کنید. سیر راحت سیرو بیرون نگاه میکنم سیر. رو لیست دریافت کنید. ببینید چند درصدش عملی شده، چند درصدش عملی نیست کلی. چند درصد، چند یه مقدار عمل شده، یه مقدار نمانده. اینو بروش بیاریم. آخرین مورد سیر مستحترسه. از سیرت سیره ای که مستحدث مستحدث اسمی محفوله دیگه بعدن حادث شده حادث شدن یعنی جدیده مثلا حدیث یعنی جدید مثلا وزن علوم حدیث که افته میشه منظور علوم حدیث و روایت نیست علوم حدیث بعضی وقتا منظور یعنی علوم جدیده حالا سیره جدید یعنی چی مستحدثه بعد از عصر حضور لمعصومه علیه السلام لمعصوم علیه السلام آن سیریه که استحداث شده بعدا به وجود اومده بعد از عصر حضور برای معصوم اصل حضور معصوم سیریه هایی که اونها دیگه مستحدثه نمیدن پس ببینید تفاوت داشته باشید اونا سیرا که زمان معصوم هست، اونا سیرا های معاصر معصوم. اون سیرا که بعد از معصوم هست، اونا رو می گیر سیرا های مستقضه. حالا چه سیرهایی هایی که الانم هست، چه سیرهایی که اون بعد از احمه اومد و تمام شد، چه سیرا که بعد از ماها به وجود اومد. همینا ها سیرا های مستقضه است. چه زمانه ما نبوده. ما است از بعد عصو رسول المعصومه علیه السلام و ولو تشرمه گذشت تصدمه گذشت و زائل شد قبل عصرنا فرض کنید ما نگاه کنیم ببینیم از قرن سوم مثلا قرن چهارم تا قرن دهم ده یه سیری حاصل شده و یا لدا خب من میگم با این یه ساعتی هم اداو بدیم درس رو این حیف. این صفر قسمت ناش. خب این بریم بله. و لا و و زال قبل اصرنا قرن 4 تا قرن 10 یه بوده. سیری بوده. ابن در اینم سیری مستدسه است. او یا 10 تا بعد ها در اصر غیبت یعنی از زمان بعد از ما مثلا قرن بعدی شروع بشه تا هر موقعی فی اصل غیبه اینم سری هست که بعدا با اینا کار داریم مثلا خب برای فردا بحث امضا و حجیت رو حتماً پیش مطالعه بفرمایید البته بحث امضای نکاتی داره اگه خیلی سردر نیوردید ایرادی نداره سر کلاس ان حل میشه برایتون. اون تکلیفی که گفتم که تو متون فقهی و اصولی دنبال سری اوغلا اینا بگردید گشتید kesin کار انجام داد خبتم جستوشو بزنید کسر تحقیق خیلی خوب, خوب. خوب. نرمحصار فقه و اصول رو همین یه جستوشو بدن از سیرت و اقلاهیه یا سیری اقلاهیه ببینید کجاها ها فقط یه نگاه بندازید دردر درده یه نگاهی بکنید دوستان مباحثم را بندازید ها این بحث ها مباحثم میخواد ببینید فکریه و تو فیختون هم خیلی به در خواهد خواهد تو اصول هم به در لذا از همین الان مباحثت را را بندازه یه ما شب زود بخوابید بعضی از دوست که دوباره هم مشکلات پارسان رو تو کلاس نداشته باشه محفظ.